الحمد لله رب العالمين وصلالله على سيدنا رسول الله, سيد الله وآل الطيبين الطاهرين المعصومين اللات رأينا على عبادهم عشمين اللهم اخرنا زنيم شدیم حمد عشمتی يا ارحم رحمی از چه که راجع به نخست اساسی ما روایاتی که درباره فطرت یا تهنوف یا تتخور وارد شده که خداوند حضرت ابراهیم رو امر فرومدند و در روایات تعبیر فطرت شده، سنت شده، سنن المرسلین شده از این تعابیر درش واقع شده و بعضی از روایات ما تعبیر شده اصلا به تنف یعنی تتخور و ارز کنیم بیدیم در زیگه آیه آمده فطرات الله علیه فطرات ناسه علی ها یه مقداری اینها ها با متعرض چون برگشت این بود که برگردیم به روایاتی که در تفسیر این معنی آمده ارز کنیم بلی که یک روشنی ابتدار بشه راجع به دو تا مسئله شاره و مسئله به اصلاح ریچ در روایاس خود ما و اهل سنت یه نوع اختلافی هست حتی در بین اهل سنت اختلاف اقال هم خیلی زیاد و خیلی تکه واور واقعا یه مسئله اینقدر ق محل ابابتلا این هر شما کدا به آتر ام مامونی سجا نکنن اون شد من کننتم آلار نقل میکنیم مثلا عملن نکرده این همه نقل از اهل سنت و فوقهات هم اینطور مختلف درباره طاح س4 تا قول ن هم کردیم گذشت در ریشم هم حوزن چهار بود البته از کردم من سابقا راجع به ام... کلیه این مسائلی ای این ارز کن تفصیلا تشاره ارز کردم اینهایی که در بدن هست یک نوع اختلافی هست مثلا در موی سر که آیا تراشیدنش بهتره یا گذاشتن و آدا به هم کدوم در موی سبیل کرد سبرا متعرض نمیشین تو از محل برزن سبیل هم که چهار رعی خوندیم در موی ریش هم با چهار رای خوندیم در موی سر زن روایت داریم که مصلت حرام تراشیدن نه تراشیدنش تراشیدنش رو در موی زیر بغل از کردم در موی زیر بغل که در روایات معروف آمده نقصه نقص نفس کشیدنه حقیلی هم درمات که آدم در موشی بخواد بکشید و در حالا این چون محل کلام من نیست فقط اشاره میکنم بعضی از روایات اهل سنت داره که ظاهرا میگه من پیش احمده نه هم بر می احمد نه همبر بودم یا شافعی میذار احمد اذن تراشید زیر گزارشش گفتم گفت نه سنت نثره اما من تحمل کسی به نمو ندارم فقط تراشید اکتفا و لا اصل سنت همون کشیدن نه اونی که در روایات اهل سنت و ما از سنن ابراهیم نرم شده نثره نقل اهل یکی دیگه هم مسئله ane هست که اون درش رو واسه حرج دارید در این دو ستا یعنی یکی اطر یکی نه من نمیخوام اصلا مبحث کارمون چه نیست در ane و در به اصطلاح اختلاف دیگری که هست غیر از این حالایا واجب است و مستحبه غیر از وجوب استحباب اختلاف مهم فریق است حاصله زمان مثلا حلقه ane هر دو هفته یک بار روایت 40 روز هم داره که از 40 روز دیگه کمتر نشه در در این قسمت که انوا از زینت در بدن هست به لحاظ مو به لحاظ ناخن به لحاظ موی سر موی سوی موهای دیگه این چیزایی که شده موی ابرو اما من قصد دارم تعبیرش adam این موهای کل موی بدن خود کل موی بدن هم دارن اهل سنت دارن حالا من نمیخوام زیاد اون بحثو بشه ما فعلا در این قسمتاش اونی که مربوط هست به مسئله شوارب و مساله له ها شوارد رو هم نمیخنم کلی دیواز بشیم چون محل بحثمانی نقطه اشاره هم همین نقطه اساسیش یکی این که آیا قص آمده قص خود شواره چندین رابط قص و شوارب داره ادعیه روتم اح و شواره با بوده حف و شواره با آمده در این جهت اختلاف کردن که دیگه چون الان اصولا محل کاروانی اشاره اجمالی کردیم و همون اشاره اجمالی که اقوال رو خوندیم اکتفاد اون وقت راجع به اون نقطی که الان ما خبوش کار بکنیم اون بحث حضرت ابراهیمه این احتمال هم الان اینجا مسئلهش بکنم که احتمال لطیفیه این احتمال هم هست که مثل بعضی از موارد دیگه، سنت حضرت ابراهیم یه چیز بوده پیغمبر اغفت کرده باشن این هم مثلا اونجه هایی که سنت از ابراهیم بوده قصد و شارع بوده کوتاه کردن سبی بوده پیغمبر فهمدن احب و شبابه یا مثلا سنت از ابراهیم در ریش محدود نبوده اعفاء لهیه بوده که یهودی هم این میکردن پیغمبر فهمدن نه هم از طولش هم از عرضش کم بکنی مازاد القفضه و این یک مطلبی به طور کلی حالا من نمیخوام الان وارد بحث بشم این به طور کلی و روایات رو الان فعلا این روایات افاله ها رو ما جداگانه میخونیم با عنوان بخش روایت الان اون مقداری از روایات که در رابطه با قصه هست که ابراهیمه این قصهشه این قصهش م... قصه... قصه مشروعی بحث ما هم تا اینجا اینجا جمله از روایات آمده عنوان ده چیز که جز امر ابراهیم و اسرائیلی بوده بعدششان امر خیلیه که قائل الله لی ابراهیم تذهر نه سلگش کوتاه کرد بعدشان تذهر ناقلاش کوتاه کرد در که در روايات ما آمده این در روایت اهل سنت من نميدم که قائل الله لی ابراهیم در روایت ما هم خيلد مصداق اکتشاف سكوني باشه فعلا نیست اما ذهني که اما با باشه از رو ما اونجا اعتراض کرد. این راجع به بسیار تبرایی، زبانی که مرسل داریم که خالی از نیست که تقدم کلامی در چیز آمده یعنی اشاری که ذهن قا میاد زده به اساسا سرچوبنی، اونجا هیچ احتفال نیامده. اونی که محل کار ما سلاح، بحث احتفال لهی است. اونجا برون اعتبرایی نیامده و تدوق هم در طریق اون خطا داده. سدو هم همون امت نورده در هدایه هم هم امت اما در کتابی که الان به اسم تفسیر علی ابن ابراهیمه این در چیزی که از از ابراهیم نمشده پوشت اونوان اعفاوله ها هم هست و در این روایت ما اصلا نداره در این روایت ما البته روایت هم روشنگی چون اصلا کلام علی ابن ابراهیم بشه. در این روایت ما یک ای داره در بقیه روایات ما نیست بلکه تا اونجایی که من تو عبادت اهل سنت هم پیدا نگردن فهیه لم تنسخ ولا تنسخ اله یوم قیامه این هم یاده این هم مستفردن در تفسیر علیه ندرانی که این روایات تفسیر علیه ندرانی یا مرسلت از, از امام صادقی یادن کلام علیه ندرانی دلحات علمی ندارد این کل اون چی که پیش ما بود پیش شیع این کل شیع اما اهل سنت ما هم داریم البته اینجوری دارن این کتاب کنزل امال رو اجمالا میخونم دیگه آرون بعد تفاصیل شد یکی که دادن الفکرتو قصص الازفار و اخذ و شارد و حلق آنه که این توش لحی هم نداره خوب دقت بکنید و قصص و شارد داره اخذ و هم کتاه کردن سبیله از بیخ زدن نیست، تراشیدن سربی نیست. احتمالاً این آیات این روایات که پیش از صفات و کذا از خبر، در انشاءالله دچار اشتباهی خودمون عبارته. در کتاب ابن حجر خطبوال در شرح بوخاری این احادی در بخاری هم آمده. اومده. ایشون میگه مجموعه فلان اسم داره، فلانی گفته مجموعه اونه که با من صفات 30 تا اومده. ایشون میگه نه، اونی که ما پیدا کردیم برمون صفات 15 تا. متفرقاته همه رو با هم جمع سفر کردیم کنزف در آن اینجا الان سه تاست البته این روایتی که هم خوندیم اشاره‌ای به آیه ندارم، آیه محل دست ماست چون در داره ولی از اوهینا ان اگر اینا باشی, باشی ملک ابراهیم هم فطرت الله لکی فطر ناسه علیه این احتمال خیلی قبیه که هر روایتی که توش کلمه ففت یا خود بقدر بکنی ولو نگه من تفسیر آیه هستم نمیخواد بود همین که کلمه ففت آمد اینه اشاره بایه چون در امستد ملت ابراهی محنی کن سترتا لاحلت بیفتران ناس علیه ها این از اون موازد شما کنان عرض کردی که یک روایت نازل باید، اما تصریح نمیکنه. این الفترا این از ابن عمر نقل ابن عمر به سنامه و این اخذ شارد داره کوتاه کردن نمیشه ببین بعد از ابو هریره در بخاری نقل شده نسائی نقل شده الفترا تو خمس الختانو یه روایت دیگه هم بگم که اولو من ختان ابراهیم تا ابراهیم اولی که صورت نشده و حل قرانه که الان ذکر شد و نطف ال حالا در روایات ما اینجور داره که درست یعنی اون که اصلش نقص افت بوده لکن نور زدن و یا تراشیدن هم کافیه این هم ما دارید این مثلی که احمد النهبل در میانه قرنه مطرح کرده احمد النهبل و فاسه دیست یک قرن امام صادق مطرح کرده این یک نکته ایست که تلیلتیفه چون رو میاندن گفتن اینه که گفت به زمان و مکان عوض میشه. اینه که از موارد است که به اهل به رجوع میشه برای فهم دقیق مطلب. ظاهرش نقلول اخته ن کشییت ممسغن در و هم ماگی می بشه واقعا ایت میشه. میگه پیششه احمد دم می تراشید گفت نه سندر همون نطدار که من تحمل ندارم گفتبی ت پی نمیتونم اون سنت عمل. اما در رووارارت ما همین مطلب قبل از یک ق قبل از احمز نهحملبل از اعام صاد مطلب. که نه خصوص نرسی الان مضمون دوازد من انا مضمون تو زهنم نیست حلق و یا نور زدن هم همونطوره فرق نمی کنه یکی بلی؟ لا نه مزهر. لا لا و تقلیم اظهار و حلق و شاره ببینید اینجا از خود عبوهره نرزو باز حل خوش کاره من باید در این پنشتایی هم که الان در اینجا عرض کردیم باز از لحی نامی برزه نشده باز در بخاری از ابن عمر منر حل سطره حل قلعانه و, و تقلیمون از کار و قصد و شاره این هم باز توش مسئله اعفاوله ها به کار برده نشده با حدیث بعدی صفحه 654 منل ففره این خبری و قیی ن کرده از اماارت نیازه منل فه المزممت رو و استنشاق تویات ما هم بود جای موارد خلال و سووا مثلا توی یک روال خلال هم بود خلال دیگه نبود وخص و شاره اینجا کوتاه کردن و تقریم مول و اسال و ن فرت اینجا با هم و الاستخدام استخدام یعنی کلمه حدید است. در روایت هم هست. استخدام ولی تصهید المغیبه در روایت داره. استخدام یعنی به کار آهن. مثلا مثل, مثل یه ماشین ترکاری مثلا ماشین ترکاری به کار بردن. استفاده به کار آهن کنایه از استفاده کار کردن آهن اطراف آهن است. این استخدام چون با آهن میتراشیدن با کیفی که دوبید و قسل براجر و الانتظام و و الاختطان این چیزایی که از سرم بعضی از چیزا در خطرت در بعضی روید در بعضیش رو نامده مثلا قسل براجر اینجا آمده ما نداریم سنت نداریم براجر جمعه به اسطلاح برجمه. خودش برجم هست برای از این حد فاصله ای که بین انگشته ما هست این رو می چون اینها ها که می خوردن فوقش دست به زمین یا به چیز مثلا به پاچه می کنید بین این فاصله ها چربی می موند رضاقه های پیش پیرنما مو دستاشون به خاطر همین این پاک کردن اصل های برای یعنی این فاصله های بین انگشت ها این پاک کردن فاصله ها رو پاک کردن که جمع برجمه میشه البته چیز دیگه هم داره اصطلاح دیگه هم داره اصلا براجم هم دارن یه چیز دیگه هم داره. من اگه اینجا پیدا بکنم به شما بگم ببینم اشاکیه هم دارن نداره این براجم هم داره لذا این حدیث در صفحه بعده پیغمبر مثلا قصو اضافی رکن ود کن و قلامات کن و نقو برابجه مرکن برازی میکنه پاس بکنی و لا تدخلون علیه فخرن بخرا بو از، با این حالت که بوناتی بشن من وارد نشین این برازیه اینجا هست اشاجه هم هست اینم دوتا یه چیز دیگر هم هست حالا از اونم پیدا شده هم مجموع هم سه چیزه که پیدا شده هم خواله توزیست اینجا چند جا داره قسل براجه چند جا داره و قسل براجه در مازم قسل بنا که اشاجه هم داریم البته اینجا اشاجه تو اینجا وارد نشده چی دیگه اصطلاح دیگه استم الان اشاجه در لغت عرب این فاصله بین انگشتی که به که چسبیده این انگوشت آخری رو میگه. در بعد این اصطلاح دیگه هست که شبیه براجمه اون فاصله انگشت اول با دوم دو براجم رو گفتن فاصله دوم دو با سومه اشاجه فاصله سوم با کپه مثلا جهلیت اگه اله اشاجه این آخر, آخر انگوش که رو ترچه سویده اشاجه در ایجا نداریم در روایات در کلمه اشاجه نیامده اما یه چیزی دیگه است که شبیه هم به اصلا براجه خب اصل براجه ولی انتظار، انتظاه, انتظاه عباره از این بوده که مثلا اصلا اروپایان هم می کنید قراری ها وقتی مثلا بلانسا بول می خودش خودشون نمی شود این انتظاه آوریختر روی به حساب محل بوله نزه آب آب بریزید این انتظاه مراد اینه این انتقاس هم آمده بعضی آن ادعا کردن این اصلا چیز دیگری دی. انتظاه غلط قطیه شبا چیز دیگه ولی اون بحث لغوی جای خودش تونم بحث محل محل بحث انتریز که اون اصلا خودش چیه؟ مثلا در این کتاب بعدیش هم داره و انتقاس علماء انتقاس علماء و انتظار، اینها بیش به یک معنی هست من در, در اینجا به بنام فسرت آمده که در روایت غمی نبود از اجائب این همه اضافه کرده شد. دوازه ازیدت رو شدید اضافه کرد، از دهت ها بیشه شد ای افااللهیه باستوش نبود این هم چیزه اضافات هم داشت باید دو مرتبه خمسون در مصنع احمد و ابن ماجه خمسون در فطره اختتار و استهدات این آهم حدید بخار برده هست قصد و شعار تقریب و لعصف و نفت کل این هم باستی شهر فاعله هار نداره من اون روایاتی که اینها آمده و به عنوان فطرک نیست نمیخونم من ف... فعلا نظر فقط به روایات فطرک باز از آئیشه نهاره شده اشرت من الفطره قصد و شارب و اعقال لحیه این آمده این رو مسنده احمد نهاره کرده وست و باز وست شاول ما نیامده. و قصد و ازفار و قصد و براجع باز قصد و براجع تو روایت ما نیامنده و نفت کل و حل قلآن تو روایت ما هست و انتقا سلما باز این تو روایت ما نیامده. از این دهتا تو اعفاء اللهی هم هست البته گفتن یه در روایات به عنوان سنن مرسلی اونها هم نمیخونید فعلا توشم نیست روایت میگم الان ما نمیخونیم بله اون به خاطر اینکه ما دنبال روایتی هستیم که عنوان به اصطلاح لهیه یعنی به عنوان لهیه حالا من چون تازگی ام دیروز در بحث گذشته راج اجمالا اقوال اهل سنت و خونده یه نقطه ای رو یادم رفت رفیق یعنی مود بحث گذشته ما غیر لهیه که داریم و در شاره و شاره و شاره و بس باب اینها یه لحظه دیگه هم داریم وقسه رو آسانین نکن اسنون با عین و سه, سه نقطه پسون مثلث رسل با نون وا ون نون ن اسنون اصراد از الفاظ مثلا یهودیا بوده چیزی بوده به عربی نیمخونه اص... اصالی جمع اصنون گفتن مراد ریشه حالا اینو بعد الان من اشترای اجمالی میکنم این میاد در جای میاد و گفتن نه این قسمت جلو به ریشه مثل این یهودی ها که بعضیات هستن که این قسمت جلو پرم میدن خب یکی هم اینجا داره وقت و اصالی نکن این من الان نمیخوام باردون بشنم مثلا در یک روایتی اینجا صفحه 657 داره اول و من قصد شاربهو ابراهیم ما بیشتر در نظر روایتی که ارجاع امر به عنوان حضرت ابراهیم مثلا در کتاب بخاری این جزء احادیث خیلی صحیح و صنده اهل سنته هم بخاری نقل کرده هم مسلم نقل کرده ابو داود ترمذی، نسائی مسنده احمد حنبل نقل کرده احمد ابن حنبل نقل کرده از عبی حریره الفطرت و خمس الخطان و استهدار، استهداد همون به کار بودن آهند و به حضر آنه دارست دار و تقریم و لعصفار و نفت و لعب و, و, و قص و شاره این هم این عجیبیه تو این روایات باز افاوله ها نیامده باز دو مرتبه الفطرت و از اموره نیاسب فرمزی نره کرده و قال حسنو مزمزه و استنشاق و سواق و غصت و شواره و نفت و و غصت و براجم و تقریم و اسفار و انتظاه بلما و الخطان شبیه این هم خوندیم از مصدر بیاریم تو این هم باز قلعه عجیبه از امار یاسده که در افصاله باز هم مسئله فاوله ها نیامده باز دو برسده در کتاب بخاری من الفتر حلق و لآنه و فقیلیمون و قصد و, و باز هم الله ها نیامده باز در کتاب تبرانی از امار یاسر گذشت چند سنت جاله گذشته اونجا هم نیامده خوندیم انا دوست مستدگیم خوندیم از امار یاسر در این روایات ما هم نیامده و عذاب واداسی دیگری که مربوط به این قسمت میشه یعنی مربوط به بحث که یک روایتیه که ادعا شده که روایتی در اینجا که مثل شبیه همون به که ما از پیامبر نغل کردیم از امام نغل شد که خداون از اونم به از سمیر برمیگرده در از فیبراهیم گفته هفت یا معش کماره 658 یا معشر الانسار حضرت پیغمبر پرموندن همه رو و صفه رو یعنی محاصر دوموی سرسون یا صرف بکنی یا زر بکنی و خالفو اهل کتاب و اهل کتاب خذابشون سیاه میکردن ایشون فرمون نه شما یا سرخ بکن یا زرم قال فرقونو یا رسول الله این احل کتاب یست سرولون ولا یعتذرون از این من این شما این شما عرض میکنم از عدلهی که برای حرمت حلقلیه یک عبردم مضمون این داره. نه این خود این روز بالخصوص خلاصه ای لباس است که اگر یک لباسی یک حیعتی حالتی شعار مثلا مسیحیت شد یا شعار یهودیت شد به عنوان شعار اخت شد اون انسان باید مخالفت رو کنند اون و یکی مونجه همه جایی زیاد هم باشید کتاب خضابشون سیاه قراردن شما خضابشون ها قرمت دارون میازن همه رو وسط برو و خالفو, خالفو احل کتاب گل ما یا رسول الله انا احل کتاب یا تسر اهل کتاب سروال یعنی شروال ما الان به فارسی شلوار میگیم لا مقدم در خود هم فارسی قبل ما شلواله شلوال مقدمه عربی هم همونه سروال و سربال این دو تا آمده ایم عربی شد درست چیم تبدیل رسید میشه تل این اهل کتاب یک سرولون اهل کتاب شلوار میگوشن اما اضاد لب نمیگردن ولایت یک تذرون فقال رسول الله تسرولو و تذرون شما هم به اصطلاح شلوار روشید روشم لنگم بپوشید و خالف و اهل کتاب بازم با اون هیئتی که اهل کتاب دهد مخالفت کنید قال فقال این ها رسول الله از اهل کتاب یا تخف ولایم تعلون اهل کتاب خوف می کوشند خفت کردن موزه به اصطلاح یه نوچکمی که مثل چکماننده اما ساق نداره این رو از پوست درست میکرد. شبیه جوراب 20سا این از پوش درست میکرد وقتی علامت سفر هم بود کم کسی تو شهر می وقتی میخوااستم برن سفر این می این با این پاشنتون تو کفششن کرده. یعنی کپشا کپس این خف هم می که اگر کسی مثلا از خوونه شما بیرون خف پووشیده بود مثلا سوار ازی دو برسی هم بسته بود خیاز این آذت سفر این علامت سفر بود. چون در سفر پیاده مخواستم بشن، این از جورا بود از دساکر که حافظ پا بود تا را اذیت نکنه این نه کتاب اما عرب نه علی نه آل آل که یه روباد کلامی میگی دمت پای بر اثران چیزی نمیشه قل یا رسول الله اهل کتاب اتخففون اهل کتاب خوف نمیوشند ولاین طعرو اما نه آل نمیوشند قال تقال النبي صلی الله علیه و آله تخففوا لنطع شما هر جا بپوشید هم خوف بپوشید هم نال هر جا بپوشید سفارشی که خوف و خال اهل کتاب قلنا یا رسول الله و قال يا رسول ان اهل الكتاب يقصون عشانينمو این اسمونشون نمیبرن ظاهرا منظورم نقیه باشه چون یهودیاتی میشن ولیدت یقصون اینجا خوب دقت بکنید اشتباه نشه تازه توش حلق نیست خراشیده نمیست کوتاه میکنن جلول ریش و ریشاتون کوتاه میکنن و یوفرون سباله سبیل ها زیاد میشن توفیو خرابه کردن توفیو اخر یعنی فر... سبیل ها رو بزرگ میکنن و ریش ها رو عضون رو کوتاه میکنن معلوم میشه که حتی مسیحی هایی که بودن البته مسیحا مگر کیتون بربادش مدينه مسیحی نبود من البته مدينه یهودی داشت اون مسیی نبود نقلش رو خاله سبال نبی صلی الله علیه و وسلم قصوص سبال اکو، این سبالشون رو، حالا من توضیح می‌دم. چون آن دوست دارند سبال و اسانی نشیدن، این با دست لغایش بود. چون احتمالا که سبال چیز دیگری باشه. خیلی از اون فصل سبیک شد. ولی قصوص سبال اکو و رفته رو اسانی نکن و خاله و اهل که بازم فهمید. یکی از عدلهی هم که در کتب متأخر ما زیاد آمده این عدله رو زیاد بکرم یکی از عدلهی برخورم از بیشتراشی هم همین مدونه که اگر مثلا انسان روی شکل به تراشی شدیه مثلا مسیحی ها و مجلسی ها و یهودی ها یهودی ها و و کفار فقال نبی صلی اللہ علیه واله قصو نکن و وحث رو و نکن اسمونه ها برای ایش های خودتون رو زیاد بکنین اما سبیل رو بسیار بکنین کم بکنین این راجع به مجموعه روایاتی که ما الان داریم اما آن روایات احمد نهنبر که ذهنم نیستردش اما در روایات صحیحی که در فترت آمده و در سهی بخاری هم هست و مسلم هست تو اون روایات فترت اعفاق اللهانی خلاصه برد چون همه این روایتی که هم دنبال این نقطه بودیم غیر از روایتی خودش اعفالله ها و عرض کردم در بحث بودشت این سمره مهمش در اینجا ظاهر میشه که آیا افاالله ها لها جز سنن حضرت ابراهیم بوده یا ممکن است افاالله ها جز سنن پیمبر اکرم بوده این مطلب که افاالله ها باشه جز سنن کلو میگه از این دو پیغمبر بزرگواره در روایاتی که ما داریم مصندن بحثا بزار سنشون خوب از فقط سنی نفسشی بانیلا بحثا بزار سنش محتبره این فعالله ها رو نداریم این روایت ما عبارات سروق هم که در تقییه بارمان فتوا آورده اون هم نداره تو هدایه هم آورده نداره کافی هم که نیه آورده شیخ سوسی هم نیه آورده اما اونی که در کتاب صدوق آمده نداره منحسرن در پیش ما در مسادر ما در این کتاب تفسیر اردیه ابراهیم ابرهیم ایفاله ها آمده این پیش ما خب به لحاظت هست یا روایت نیست یا زعیب این راجعه بیگون پیش اهل سند در روایات صحیحشون نیامده این مثل این مصند آیشه در احمد نحمد او ورده نشد سندش نگاه بکنم آیشه داره افعالده ها رو الان من اینجا که دیدم اما یه سرد دیگه به خودم من صابره دیدم چند رو از ابو هوریبه اون هم داشت افعالده ها رو در این سردی که الان خوندی نداشت افعالده ها توش نبود این راجع به این قسمت یک روایت دیگه هم داریم. اونجا به عنوان فطرت نیست به عنوان این که ده کار رو بوده که قوم روت انجام دادن که خدا من عذاب رو بر اونا پرستان یکیشم لحل قوله ها اینم داریم. در کتاب اهل نه؟ چون الان اینجا نهی ایشون نهی ایشون برده باشه حالا مخصدرش در کتاب جامعه سقیل سیوتی اشتا طور فعله ها قوم که این دهتا یکیشم لحل قوله ها خب بچه استظهاروی هم معنی میشه که مثلا در سنان انبیاء سابقی نبوده کارهایی داشته بوده که این انجام را چه به قوم جورس و افعال که این انجام بدن طبعا ادهی از این مطالب بگیش شد در رواستی دید ما هم آمده ما هم یک رواست داریم که شیش کار از افعال اهل لوته قوم لوته رفت شده کار من این که توی برس بشن که تویی کشم داره که رمیه به ج و جلاحت در هم جلاحت در شد یعنی همین که هستند بعضی واشای چیز و بشایتی که هم طلاخن که چون تیچو سعی میدن یا شبیه این طلاخن به اصطلاح این جلاحت اول رقیو به جلاحت این میشه کار اصحاب قوم لوط ما هم تو روایاتمون داریم غیر از این ده موردی که الان اینجا هست مجموعه از روایاتی که آمده که قوم لوط چه کاری میکردن این یک مطلب یه بیان اینه که حالا این البته از بحث ما خارج این در سطح اساسی چون آمده من از این جا میگم که این محل شاهد عده از فقهای اهل سنت مثل خود ابن حلد مثلا اینا قائلن که مثلا لوات حرام اما حدی نداره عده زیادشون هم همون روایت ابن من عمر عمل السلام عمل قاموس فاعل و مفعول مطلب رفع میگیره حالا اونا بحثتان که اون صدی صحیح از دارن ماها پنج تا یه قسمی یه دیوار از خوه بندازن آتیشی دارن دلاخل. اون وقت ادهی از اهل سنت شدیه همون بحث ما رو دارن که وقت از بالا بندازن من این نقطه چون کمی نیست اونا بسیه ترسکشون چون میگم مشکل کار که در اهل سنت گاهی به اصطلاح ماها کم میارن که چیزهای ترسکتی پنجی دلیلیت سوچن این چون اهل قوم رود در رفته چون اولا دیدو آیات روایت هم ورده من این توری ارز رو ارزو کنم اونا دلیلشون این است که خداوند متعال در قران میفرماید که قوم رود رو این جوری عذاب کردین که اون شهرشون برگردوندار که جزئی باد زد تا حق طلای زمین, با بود زمین رو برد بالا برگردون به اصطلاح زمین قوم رود شده خب این ملمونی که شد ساختمونهاشون خراب شد اوناشون آتیش گرفت دهن خود دیوارتون قرار شد از بالای اینا رو پرتاب کرد. یعنی شبیه اون روایتی که ما داریم بعضی‌ها استنثار کردن قرآن این نکته مهمه در روایات ما نیامده که ما این از قرآن گرفتیم چون ما همش حدی هم نداریم ما در مورد دیگر خوب. این در باب حدود خیلی نکته ظریفی از, از نظر به بحث ما رفش نداره بر خالص شد که چون آمده در کلی ای اسلامی این بد نیست کردن خوبه میگن چون خداوند نستاد قوم قومه این عذاب رو دار زیادایی برد بالا برگرد پس اده از بالا پرشون خونه خراب شد این چیزی که ما داریم که از دیوار مثلا از کوف پرشون پایین یا دیوار رو شراب بکنن یا آتیشش بزنن دقیقه این رو که ما داریم شبیه این هم در وضع استقلاله های اهل سنت آمده ابن حض ما برده تو محله از اینشون رد کرده. درصن افتادیشون همون راه هم راه, هم راه دیگه بحث سر اینه که آیا واقعاً استثنایی میشه که چون من چند دفعه عرض کردم ما تا که خودم الهی میاد ما در حدود چی حدی که به این نحوه باشه اصولا نداریم بحث این اصولا روات ش صحیحه که از طرف ما اینه من میگم به لحاظ ظاهری صحیه لكن خب من در محله خودش عرض کردم خود واقعا اشاره داره که از آیات کتاب گرفتید این اشاره در واقع خارجی بوده خین دیگه از مخاطب خیلی مهم که اگر یک مطلب در خارج نرو می شده روایت آمد اما نانظرره به اون نیست مثل که رواز حرفرس تو نمیگه من نظر باعایی هستم اما تو قرآن داری منوب من واره همین سه تا حالا میشهیدیم این روایت در حقیقت همین طوره خود دقف بکنه. این روایت نظررت به اون واقع خارجی این به ما در دیش حکمی در دیش حدی دیش در منبقه به ذات محرنم تخصول فاقد تخصولو داریم ته ذات محرن که از نمه این حدود رو نداره که از دیوار, دیوار رو خراب بکنیم و ارزم کردیم که که این مثلا به ذهن انسان میاد که به لحاظه به اموز ما و ما جنبه کیفریش هم روشند نباشه یعنی خیلی جنگ های کیفرش ابهام های شدید و اصلاً مثلا دیوار چه دیوار یه دیوار دور داره خراب بکنید شو تن خب دیوارو رو... یه دیوار مثلا بزرگ خراب بکنید دیوار سمت باشه 4 باشه اصلا چون کیفر که از خصائص که کیفر همیشه باز حد و حدودش کاملا معین باشه میگم در کتاب های معاملات همان هم فتوا داده اله العالم مینهاش شریعت وسیله وسیله. وسیله وسیله که نداره. همان هم فتوا داده اما انصافش ما اگر بخواهی این رو با عنوانی کیفر حساب بکنیم لحاظ کیفرش با مشکل رو برو میشیم کوب از چه کوبی؟ همین کوهای اطراف اون خودش مختلف هست <تصفح> بعضی کوها دامنش شیبه زیاره بعضی کوها خیلی تیزه بعضی کوها سد میتران دیریستی میتران این خودش کیفر بودنش دقت میکنی؟ خب شما همانشون تحجیب بکنید در شلاخ زدن هم در کتاب احسان نست داریم بعد داریم. تحریدن گفتن مثلا چوبی که میخواد انتخاب بکنه اینجور باشه خوش باشه یا تر باشه مقدارش چقدر باشه به چه قسمت های بدن زده بشه وقتی که میزنه این شلاغ را از شانش یا از سرش بالا نبرنه خبینه حتی قسم تمام این خصوصی ها زفت شد چقدر شلاغ بارا بیان از یک طرف اون طور زفت در خصوصیات، ها از یک طرف این طور امهام دیوار کمنتی باشه اصلا خود این روح قانونی در کیفر نداره که ما بیایم یک دیوار درست بکنیم این شخص کثیف رو دیوار بزنیم دیوار, دیوار رو خراب بکنیم می‌فهمید؟ این اصلا روح قانونی نداره ممکن است که این حدیث ناظر باشه به اون استظهار اهل سنت تو حدیث اشاره ندارم میدونم فوقایمان فوقایمان فوقایمان دیده. من یادم خلافه تو روایت فرایمان تو که من نمیگم نمیدونم شامل جامعه جاهلیه چنین باشه اشاره نداره این یک که در نظر گرفته بشه اجمالاً در این که عمل قوملو لوذش بوده. حتی در قایه مبارکه ما تبعی کنم به ها من احد من الالعالم. کسی که قل شما این کارو نکرده. با تمام این ها این که ما اثبات اون ولود رو با این ترکیب بکنیم خالی از نیست. اما تو این روایت مبارکه اجمالاً میشه اثبات کرد. این اجمالاً میشه اثبات کرد. اثر سرشون یک روزهنه روشن نیست. سند داره. در کتاب جامعه سریلیم سیفی نگاه کن من می‌خورند دائما نگاه کنم به نظر که ضعیف نیست و ضعیفون. کی ارمز دستش داده بود ضعیف حسابش اماش که من اکنون نشون خودم مستقل نگاه کنم دیگر داده که خودشون می‌کنه. این مجموعه روایاتی که ما نه ما نه ما نه ما نه